أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن فطلقوهن لعدتهن وأحص العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا سري تلاق و سوره طلاق به این خاطر به این سوره گفته میشه سوره طلاق که بحث طلاق طلاق زنها در ابتدائی این سوره آمده قبلا هم عرض شد که این سوره را سوره نسا سغرا هم میگویند دو سوره نسا در قرآن کریم هست اون اولین سوره نسا که صبح تمام شد سوره نسا کبره است و این سوره سوره نسا صغراه است در این سوره الله عز و جل احکام زنها را بعضی از احکام و حقوق زنها بیان می و این دو سوره که بنام زنها هست بیانگر این مطلب هست بیانگر این مسئله هست که در اسلام عزیز چه اندازه نسبت به زنها توجه شده؟ زنهایی که قبلا هیچ جایگاهی نداشتند ارزشی نداشتند بسیاری از اقوام و ادیان گذشته اصلا زن را حق نمیداد بعضیها اون را به عنوان انسان حساب نمیکردند اصلا بعضی از اقوام معتقدند بعضی از افراد معتقدند در نظرات قدیمشون میآید که زن اصلا موجود دیگر غیر از انسان هست اما الله عزوجل از اون جایی که به این فرزند آدم که از فرزندان آدم هستند و انسان هست به این از آن جایی که اهمیت دادند حقوقی برش بیان کردند در سوره های متعددی و مختلفی احکامی و حقوقی که متعلق بزن هست بیان شد و بیان فرمودن من جمله این مسئله این سوره مبارکه در این سوره مبارکه ربط سوره در سوره گذشته هم در پایان سوره بعضی از امور انتظامیه بود هم در رابطه با ازواج و اولاد بود و در این سوره هم همون احکام هست، همون امور هست، مسائلی هست که مربوط به زنها هست و حقوق زنها هست خلاصه سوره در این سوره مباحثی همچون مباحث طلاق، عده نفقه، سکنا این احکام بیان شده و همچنین تخویف و تبشیر دنیاوی و اقراوی و در آخر دلیل عقلی بر اثبات توحید خداوند تعالی اینجا خطاب فرموده به پیامبر صلی الله علیه و وسلم یا ایها النبی اذا طلقتم النساء ای نبی ای پیامبر وقتی که شما طلاق دادید زنها را بسیاری معتقدند که اینجا خطاب پیامبر را هست منظور و مراد امت هست یعنی یا ای یوهنابی قل امتی که ای پیامبر به امتت بگو اذا طلقتم النساء چون که طلاق یه چیزی هست گرچه طلاق مباح اما در چیزی نیست که به شان ان حضرت صلی الله علیه و وسلم بخورد و ان حضرت طلاق بده اما بعضی گفتن که طلاق گرچه ابغز الحلال هست چون در روایتی یه هست که ابغز الحلال مبغوظترین حلال از اون چیزهایی که خداوند حلال قرار داده طلاق هست خب در صورتی ابغز هست که طلاق بدون دلیل باشد طلاق بدون توجیح باشد اما وقتی که زن و مرد اصلا سازگاری داشته نباشند اخلاقشون با هم جور در نمیاد و هرچی زندگی را ادامه دهند زندگی مشکلتر میشه زندگی تبدیل به جهنمی میشه و هر دویشون روز به بیشتر از نمیتونن حقوق هم دیگر را رعایت بکنند خب برای اینها طلاق مباهی هست برای اینها طلاق اشکالی ندارد بنابراین این در اینجا خدا تعالی میفرماید که هر وقتی که شما زنها را طلاق دادید فطلقوهن لعدتهن اولين حكم اینه که شما طلاقشون بدید ادرا لحاظ بکنید عده اونها را لحاظ بکنید یعنی چه یعنی در حیز اونها را طلاق ندید در حالت طهر طلاقشون بدید در حالت پاکی اونها را طلاق بدید و عده شون لحاظ بکنید البته از آن جایی که اده از نظر فقهاء و ایمه بزرگوار مختلفی هست از نظر امام شافی رحمه الله ادبه با طور حساب میشه با پاکی سپاکی بگذراند و از نظر امام ابو حنیفه اده با حیز حساب میشه سم مریضی بگذراند و عادت ماهیانه سپری بکند لذا بعضی از توجیحات آمدن که الام را بعضی میگن اند نزد امام شافی عند شافعی بمعنی فی هست فطلقون فی عدت هن در عدت در عدت یعنی در طور طلاق بدید و از نظر امام ابو عنیفه احناف می گویند که لعدت هن بمعنی قبل عدت هن چون اونا می گوین باس عیزت قبل از عدت یعنی در طور بالاخره حاصل و نتیجه هر دو یه چیز از طلاق در حالت طور داده بشه به همین خاطر عرض کردم که تلاق بدید لحاظ بکنید تهر لحاظ بکنید ادرا وقتی که بخواهد شوهر لحاظ بکند ادرا باید در ادهی در تهری او را طلاق بده که اولا تهر باشد و در اون طور مطمئن باشد که بعد از مریضی تهر شده حامله نیست لذا مستحب همینه که در اون طور باش همخوابی هم داشته نباشد در چین طوری او را طلاق بده فطلقوهن لعدت هن و احصل عدت حکم دفم و دستور دفم اینه که اده را حساب کنید یعنی اده زن چه باست طور باشه چه باست مریضی و عادت ماهیان باشه ستار حساب کنید اما خدای عزوجل می فرماید واتقو اللہ ربکم این نسخه عمل است چون بعضی وقتها شاید زن عجله داشته باشد این مسئله اده ای هست که غیر از زن کسی دیگه نمیتونه بگه ادهش تمام شد خودش شرایط خودش را میدانه این از اون مسائلی است که شهادت یک زن اینجا قبول میشه وقتی که زن بگه که اده تمام شد دیگه پذیرفته میشه لذا امکان داره که این زن عجله داشته باشد نمی خواهد دوباره در قید این مرد بیاد مثلا اگر طلاق طلاق رجعی باشد خب در عده او مرد بدون رضایت زن میتونه رجوع بکند لذا زن به دروغ بگوید که عده من تمام شد تا مرد دوباره نتوند رجوع بکند نتوند به او برگردد لذا این امکانش هم هست به همین خاطر و الله گفته شده یا یعنی اینکه این زن امکان داره که حامله باشد اگر حامل باشد خب ادهش طولانی میشه باید وضع حمل بکند نهمه طول بکشد لذا زن نمیخواد که این همه در خانه بماند اده بگذاراند میخواد بیرون بشه میخواد بره از اینجا میخواد که عقد بکنه شوهر دیگر را شوهر جدید را لذا به این خاطر امکان داره کتمام بکنه واقعیت را نگه که من حامل هستم یا صورت های دیگه که اینجا تا صورت کردم امکان در صورت دیگه باشه به این خاطر احتمال کتمان و مخفیکاری زن هست خداوند می‌فرماید که واتق الله ربکم از خداوند بترسید اون خداوندی که ربکم این ربکم مقتضی تقواست یعنی ربوبیت او می طلبد اون ذاتی که را تربیت کرده ترا داده دادش را از هیچ به این جایگاه رسنده از او بترسید لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشه مبينه یکی از مسائلی که متاسفانه امروز کمتر بهش توجه میشه این هست که زن عده در همون خانه شوهر بگذراند در همون خانه شوهر بگذراند خانه دیگه نره یک جای دیگه جای جدیدی نرود خانه پدرش نرود ولی در عرف ما معمولا زن را که طلاق میدن دن فورا ورس زن میان او را می برند این درست نیست این طبعاتی هم امکان داره داشته باشه اشکالاتی هم امکان داره داشته باشه که به بعضی از اشکالات اشاره می کنم اشکالات شرعی امکان داره داشته باشه لذا زن باید ادرد در همون خانه که شوهر او را طلاق داده در همون خانه که تابحال زندگی می اونجا بگذاراند اگر طلاق طلاق رجعی هست که یعنی شوهر می بدون نکاح جدید بهش رجوع کنه اصلا لازم نیست که از این شوهر حجاب بکنه لازم نیست که روی خودش را مخفی بکنه از این شوهر که امکانش هست که شوهر دوباره پشیمان بشه رجوع بکنه چه بسا زن را ببیند شاید بهتر انگیزه رجوع برش باشد لذا در صورتی که طلاق رجی است حتی در خانهی که ادمی گزراند لازم نیست که از اون شوهر روی بگرداند از اون شوهر حجاب بکند پرده داشته باشد و اگر طلاق طلاق باین هست یا طلاق مغلظه هست یعنی طلاقی هست که نیاز به تجدید نکاح است در صورت باین، در صورت مغلزه که تجدید نکاح هم در این شرایط نیست در این صورت همون خانه اده بگذاراند اما در حجاب باشد از این شوهر پیش این شوهر خودش را ظاهر نکند ولی علی ای حال در همین خانه اده بگذاراند به دلیل اینکه احتمال دارد این زن وقتی که جای دیگه بره و در جای دیگه بگذاراند امکان داری یک ماه صبر کرد دو ماه صبر کرد اون عادت ماهیانه نیامد متوجه شد که شاید بالاخره حامله هست وقتی که حامله باشد متهم میشه ولی تو خونه شوهر که باشه شب و روز اونجا می گذراند دیگه چنین اتهامی هیچ وقت متوجه او نخواهد شد و دیگه دلائلی و دیگه مسائلی دارد یکی از مسائلش نفقه هست باید هزینه شوهر بده تا زمانی که در اده هست لذا بهتره در همون خانه باشد لذا الله می فرماید لا تخرجوهن من بيوتهن آنها بیرون نکنید از خانهاشان و لا یخورجنا الا اين ياتينا بفاحشه مبينه و همچنين خود زنها هم خارج نشوند از خونه خارج نشوند الا اين ياتينا بفاحشه مبينه مگر گناهی آشکاری انجام بده گناهی آشکار را چندین تفسیر کردند بعضی گفته همین خارج شدن زن خودش یک گناهی هست ایلا یاتینا بفاحشت مبینه معنیش اینه که مگر اینکه خودش خارج بشه هی نفس الخروج قبل انقضاء العده همین فاحشه مبینه چیه؟ نفس الخروج قبل انقضاء العده قبل زکر عده تمام بشه همینکه زن خارج شد این خودش یک گناه آشکار فاحشه. هر جا بمانه فساد اخلاقی نیست اینجا هم به بمانه گناه هست بسیاری گفتند که زن را که اده میگذارن بیرون نکنی مگر یعتی بفاحشه به مبینه بعضی گفتن فاحشه یعنی بدزبانی یعنی تعن و تشنی یعنی دشنام دادن و درگیر شدن یعنی زن خیلی بد زبان هست خیلی دشنام میده لذا به مرد گفته شده که این زن را از خانه خارج نکن اده بگذارن مگر اینکه هر روز با تو درگیره هر روز بد و بیرا میگه هر روز تان و داره لذا در این صورت نمیتونه تحملش بکنی امکان داره مشکل دیگه پیش بیاد لذا بگه که بر جای دیگه اده بگذاراند میتونه در این صورت بیرونش بکنه اما در زنی که اده میگذاراند آیا این زن، زن زن معتدد زنی که در حال اده هست میتونه از خانه خارج بشه یا نه ببینید بستگی داره این زن که عده میگذرانه چه ای را میگزرانه اگر عده عدهی وفات است یعنی شوهرش وفات کرده خب فقه ها بالاتفاق میگویند که این زن روزها میتونه چون شوهر وفات کرده کسی نیست که برای این زن نفقی نانی غذای چیزی آمده بکنه نیاز هست امکان داره که از گرستنگی تلف بشه لذا روزها برای ضرورت برای نیاز میتونه که بره بیرون نان بگیره بی نیازی داره خریداری بکنه برگرده شب نباید جای دیگه باشه که گناهکار میشه و این خلاف اون عدهی هست که دستور داده شده اما اگر زن زن مطلقه باشه یعنی شوهر او را طلاق داده آیا این زن میتواند؟ اینجا امام ابوانیفه رحمه الله نظری ایشون این هست؟ که این زن نمیتونه از خونه خارج بشه به خاطر نیازهای روز مدره به خاطر خرید چرا؟ چون که نفقه بر این زن نیست نفقه بر شوهر است نفقه را برای شوهر تهیه بکنه وظیفه شوهر است بره برایش نان بگیره بره برایش غذایی آماده بکنه هرچی همین جا بیاره تو خونه بهش بده یا برایش بفرسته لذا نیازی نداره این زن بره لذا این زن در ادده همین همینجا بمانه نه روز بره نه شب بره اما بقیه فقه مثل امام شافی امام محمد اینها میگویند که زن میتونه که بره برای بیرون بره و میتونه که معیحتاج خودش را برآورده، بکنه در زنی در حدیث آمده که او پرسید یا رسول الله من میتوانم زن در حال اده بود میتوانم برم نخلهایم را درخت را اصلاح بکنم فرمود بله شما میتونه بری برگردی یعنی آن حضرت برای بعض نیازها اجازه دادن این بحث بحث خرید بود اما برای بحث درمان و علاج اگر مریض شد هر نوع معتدهی باشد هر ادهی داشته باشد چه ادهی طلاق باشد چه ادهی وفات باشد اون وقت زن اجازه دارد میتوند در حد ضرورت بره درمان بکنه مریضی خودش را مشکل خودش را حل کند و برگردد اما برای نیازهای دیگه برای دیداربینی و ملاقات والدین و, و اینها عذر نیستند اون پدر و مادر اون برادر و خواهر، اونها وزیفشون از اینجا پیش زن بیاند در این مدت عدت این زن از خانه به هیچ وجه خارج نشود و تلک حدود الله ببینید این احکام را خداوند حدود الله می نامد یعنی حد و مرزی هستن که خدا تعیین کرده شما مسلمانان بر این حدود پایبند باشید و من یتعد حدود الله فقد ظلم نفسه <تصفح> هر کسی که حدود الهی را تعدی بکند تجاوز بکند یعنی چه؟ یعنی رعایت نکند بر اساس عرف و شرائط منطقه و بر اساس احساسات خودش یا تعصباتی که بعضی جا هست بر اساس اون عمل کند او بر خود ظلم کرده او در واقع خودش گناهکار شده لا تدری لعل الله يحدث بعد ذلك امرا این ترغیب است بر اینکه عده را در خانه شوهر بگذراند اینجا خداوند به نکته لطیف اشاره می فرماید که بنده هم اشاره کردم و عرض کردم که نمیدانند شاید خداوند بعد از این امر دیگری را ایجاد کرد ببینید وقتی که زن عده می گذرانند خصوص اگر این زن طلاق داده شده طلاق رجعی هست. خب چه بسا اینجا در خانه شوهر عده می و همینجا هم دیگر را می بینم بنده هم عرض کردم حجاب و پرده ای نیست شاید شوهر رجوع بکند این یکی از امور هست که امکان در اتفاق بیفته اگر رجوع بکنم بالاخره خانواده زم نمی پاشد و زندگیشون خراب نمیشه یکی دیگر از صورت اینه که احتمال دارد این زن حامله باشد اگر جای دیگه باشد احتمال اتهام از سوی شوهر هست ولی اینجا که شب و روز از خانه خارج نشده خب میدوند که در این خانه بالاخره کسی دیگه نبوده همین شوهر بوده پس اون وقت اون اتهام متوجه زن نمیشه به این خاطر احتیاط در همین است که عده را همین جا بگذارند یا اگر طلاق باین این باشد هم احتمال هست که شوهر پشیمان بشه در عده یا بعد از عده تجدید نکاح بکنند فاذا بلغنا اجلهن هر وقتی که این زن زن هایی که طلاق داده شدن به مدتشون رسیدن به مدتشون رسیدن به چه که نزدیک مدت رسیدن قبلا این آیه را خواندیم فبلغنا اجلهن یعنی قاربن اجل اجلهن مدتش نزدیک شد الا عده دار تمام میشه زن طلاق داده شده به طلاق رجعی الان مرد فکرش را بکنه اول و آخرش یا نگهداری بکنه نگهداری میکنه در صورتی که رجوع میکند یا اینکه بذره که بره فامسكوهن بمعروف نگه دارید انزنها را طبق عرف و قانون شرعی یعنی حق و حقوقشون را بدید او فارقون بمعروفین یا از اونها جدا بشید عرف و دستور شرعی و اشهدو ذوی عدل منکم گواه بگیری دو نفر آدل گواه بگیری برای چی گواه بگیری بعضی از فقها گفتن گفتند اگر خواستید رجوع نکنید برای طلاق که من طلاق دادم زن تمام شد و رفت بعضی میگن نه این گواه بگیرید در صورتی که میخوای نگاه داره رجوع میکنی برای رجوع چرا چون که همون طور که در ابتدای نکاح دو گواه لازم هست رجوع هم گویا یک نکاحی هست دوباره میخواد زنش بشه لذا گواهی برای این لازم هست و بهتر هست و اشهدوا ذو عدل منکم دون فر عادل از خودتون و اقیموا شهادت لله خداوند به شاهد ها هم توصیه میفرمایید که بعدن وقتی که نیاز هست به شهادت شما شما شهادت را قائم کید و برپا کنید برای خدا یعنی در شهادت خلاف نگویید واقعیت را بگویید خدا را در نظر بگیرید. ذلكم یو عظو من کان یؤمنو بالله والیومخر. این مسئله مسئله ای هست که معزه میشه. چه کسی که میشه؟ من کان یؤمنو بالله والیوم الاخر کسی که ایمان به خدا و روز آخرت داره یعنی او از این موعظه پند میگیرد، او از این موعظه تذکر میگیرد، کسی که ایمانش ضعیفه او از خدا نمیترسه موعظه برای او فایده ای ندارد و من الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب خداوند عزوجل بحث تقوی را میارد در لابلای مسئله طلاق نه یک بار سه چهار بار با بحث توکل پنج بار این سوره که سوره های کوچک است اما پنج بار خداوند بحث تقوا و توکل را میارد مانایش چیه اینجا دو نکته به ذهن میرسد که بیان فرمودند یکی اینه که وقتی که بحث طلاق پیش میاد و جدایی پیش میاد طلاق خودش یک اختلافی هست اینجا بحث حقوق خیلی مهمه باید زن طوری بکنه که حق شوهر ضائع نشه شوهرم طوری بکنه که حق زن ضائع نشه لذا خدا ترسی مهمه خدا ترسی اگر باشد خدا ترسی اگر باشد اون وقت حق ضایع نمیشه حق تلف نمیشه اما اگر خدا ترسی نباشد حق زایه میشه بعضی اوقات اینطور میشه در همین مناطق ما که زن میاد و اظهار میکند که منو طلاق بده من هیچ محریه نمیخواهم میخواد از دست شوهر خلاص بشه مهر هم سنگینه محر مثلا دیویز سکه هست شوهر چیکار میکنه شوهر میبینه که محر معاف میشه و با این زن سازگاری نیست لذا خولش میکنه میگه اشکال نداره در مقابل محر من طلاق میدم طلاق میده طلاق میده تمام میشه میره بعدا زن از خدا نمیترسه میره محریه اجرا میکنه میره شکایت میکنه این شوهر بیچاره یا باید محریه را بده یا باید بری زندان خب قبلا طلاق بر همین اساس بود. این بی هست. یا یعنی اینکه این بی از سوی زن هست. بی از سوی مرد هم میشه گاهی. اینجا که دستور به تقوا داده شده هم به زن هم به مرد. از سوی مرد بی اینه که مرد نمیخواد این زن را نگه داره. زن ابی نداره. زن مشکلی نداره. اما مرد زندگی را برای زن جهنم میکنه چنان فشار میاره چنان درگیر میشه چنان عرصه را بر اون تنگ میکنه و چنان زندانش میکنه که اون زن آماده میشه که میگه محریه نه دوبرا برای محریه بهت میدم ولی مرا راها بکن لذا هدفش اینه که فقط محریه را ازش پس بگیره زن اینجا تو این زندگی تقصیری نداره میخاد مهریه را از اون پس بگیره یا اینکه بالاخره مهریه که برگردنش هست از او معاف بشه مهریه از او دیگه دریافت نشه لذا باید از خدا بترسند هم مرد از خدا بترسد هم زن از خدا بترسد لذا اللہ میفرماید الله میفرماید و من یتق الا یجعل له مخرجا هر کسی از خدا می ترسد خدا برای او راه برون رفت از مشکلات مثلا مشکل داری میگم من ماری رو نمیتونم بده مشکلت رو خدا حل میکنه نترس لذا ظلم نکن راه برون رفت از مشکل را خدا برایش فراهم میکند و يرزقهم من حيث لا يحتسب به او رزق میده از اون جایی که اصلا گمانش را نمی کند فکرش را نمی کند حساب نمی کند اصلا که از اینجا به من بده خدا برش فراهم می کند لذا اگر انسان تقوی داشته باشد خدا از در غیب بهش هم تقوی و هم توکل هر دو لازم هست و یکی دیگر از بحثای تقوی و توکل که اینجا چرا آورده شد دلیل و علت دیگرش اینه که هم شاید زن فکر بکنه هم مرد فکر بکنه که اگر طلاق بشه و جدایی بشه شاید بعد از اون نتواند که زندگی خوبی داشته باشند مثلا زن فکر میکنه تا هزینه من را هزینه هم را شوهر تکفل میکرد شام و نهار از طریق شوهر بود لباس و کفش از طریق شوهر بود همه چیز فراهم بود اما الان وقتی که طلاق بشه جدایی بشه زندگی خراب بشه بعدا چی بخورم چی بپوشم؟ از کجا در بیارم شوهرم شاید همین طور فکر بکنه لذا الله فرمد دو چیز اگر باشد خدا همه چیز رفع را فراهم میکند یک تقوا دوم توکل خوف خدا باشد گناه و معصیت نشه حقی زایو حقی تلف نشه دوم دو توکل به ذات خدا باشد خدا تعالی متوکلین را دوست هم داره الله يحب المتوکلین و وقتی که دوست داره خدا تعالی همه چیز را برایشون فرامی کنه لذا الله میفرماید و منی ابتقیلا هر کسی از خدا میترسد یا جعل له مخرج الله برای او قرار میده مخرجی راهی برون رفت از مشکلات بسیاری میگویند که این آیه که هر جا خاندی میشه بر هر تقوه روایت از ابن ابیاس مخصوص ثلاک است ويرزقه من حيث لا يحتسب اورا رسخ میده الله از جای که گمان نمیکند و من يتوكل على الله هر کسی بر الله توکل کند فهو حسبه اون الله کفایت میکنه کافی اورا ان الله بالغ امره این علت است چون چرا خدا کفایت میکنه چون ان الله بالغ امره چون خداوند هر امری را که بخواهد بسرانجام میرساند. هر کاری که بخواهد الله عالی اینجا نوشته: ان الله بالغ أمره أي يبلغ ما يبلغ ما يريده عز وجل ولا يفوتهم مراد". هر چیزی که خدا بخواد، اون را به اون سر، سرانجام و سر مقصود میرساند و هیچ مرادی از خدا فوت نمیشه. لذا خداوند هر کار را وقتی بسرانجام میرساند، چرا بنده به خدا توقع نکند پس الله بالغ امر ال التوکل است قد جعل الله لكل شيء قدرا خداوند برای هر چیزی قدری و حدی تعیین کرده بعضی میگن در جواب این هست که چرا اختلاف چرا جدایی این حکمت اختلاف هست که خداوند هر چیز حدی حد خداوند حتما حد همین بوده که اینها تا دو سال با هم زندگی کنند اینا تا پنج سال با هم زندگی کنند بعد از این خدای عزواجل شاید چیزهای بهتری دا برای هر یکی از اونها در نظر گرفتی یا اصلا در این دنیا بهتر در نظر نگرفتی در اون دنیا بهتر در نظر گرفتی لذا هر چیز یک حدی دارد انسان دیگه زیاد داد و فریاد و آه و, آو و ویلا نکند و من المحیض حال وقتی که اد, اد کے کے دارات، دارات، می گزراند قبلا اده خواندیم که زنی که مریضی دارد، ماهواری دارد، عادت ماهیانه دارد اون سه مریضی می گزراند یا ستا طور می گزراند اما زنی که حیز ندارد اون زن مثلا سنش سن به حدی هست که بالا هست سنش سن یا سنش سن کوچک هست الله می ولا ایه اسنا من المحیض انن حی که نا امید ان رتبتو اگر شک داشتی که آیه برای عده اینها چی حساب بکنیم هست نیست فعدتهن ثلاثه اشهر تمام میشه ولا ان لم وهم چنین سبب یا بازی زنها هستند که خدای تعالی بینها اولاد هم نمیده این عادت ماهیانه را هم اصلا ندارند یا یعنی اینکه بعضی کوچیک هستند ندارند و اولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن اما اگر زن حامله بود عده دارندگان حمل این هست که وضع حمل بکنن بچه را به دنیا بیارن و من یتقل بعضم نسخه عمل ببین این معنادار هست که در هر آیه بعد از هر آیه دعوت به تقوی است. واقعا در چنین موارد تقوی بیشتر لازم است کسی که مدتی با انسان زندگی کرده و زنی که از شوهر استفاده برده شوهر از او استفاده برده نیازهای جنسیشون را براورده کردن دیگه نیازهای خدای طال از طریق این زن اولاد داده لذا اینها وقتی که جدا میشوند خیلی سعی کنند که حقوق همدیگر را تلف نکنند زایه نکنند هر کس که گذشت کرد برد با او هست متاسفانه گاهی اینجا قضایا میاد گویا یک یک لشکرکشی هست هم زن و هم خیشواندان زن و هم مرد و هم خیشواندان مرد سعی میکنند که هر چی کمتر به زن برسه سعی میکنه زن سعی میکنه هرچی بیشتر از شوهر دریافت بکنه. هرچی بیشتر اون را ضربه بزنه. لذا این صحیح نیست این خلاف تقع است. هر یکی سعی بکنه ایثار بکنه. هر یکی که بیشتر ایثار میکنه بیشتر گذشت میکنه میگه نصف مرن بیا کلمر را بگیر یا زن میگه من نصف مرن هیچی نمیخوام. این دلیل است این دلیل که نمیخواد اون طرف. بل گردنش با حق اون طرف گرفتار بشه لذا الله می فرمد و من یتق یا يجعل له من امره يسرا هر کسی از خدا بترسد خدا قرار میده برای او امرش را آسان امرش آسان میشه ادامش هم خدا آسان میکنه براش در آینده میخواد ازدواج بکنه، در آینده نیازهای مالی داره، در آینده مشکلات دیگه داره، همه کارهایش خود خود به صورت خودکار روی غلطنگ میفته، کارش حل میشه، به شرط اینکه از خدا بترسه، و حق بنده خدای رضایه نکنه، ذالک امر الله انزله إِلَيْكُمْ این تأکید امتصال است، خداوند، دستوری که داده تاکید کند که ما بندگانش اجرا کنیم و این, این احکام را ما پیاده بکنیم لذا خدا میفرمه این امر الله است این فرمان خدا است که انزله الیکم این رب سوی شما نازل کرده ای بندگان لذا بعض هم نیاز است که شما از خدا بترسی و من یتقلا ببینید اونجا دو تا و من یتقلا آمد پاداششون در این دنیا بود این ومن یتقی الله پاداشش در اون دنیاست. است معنیش اینه که تقوی باعث اجر و پاداش میشه هم در این دنیا هم در اون دنیا تقوی عجیب برکاتی دارد در این دنیا کارت روی غلطک میفته هر جا مشکلت گیر میکنه خود خود اون صد شکسته میشه بومبست شکسته میشه راه برایت باز میشه فرج برات میاد این همه برکت تقوی است در این دنیا هیچ ای جا کارت بالقرهی گرفتار نمیشه و در اون دنیا اگر بشه زود باز میشه و در اون دنیا خدای تعالی به برکت تقوا کفاره سیئاتت میکنه اجر میده به بهشت میبره چقدر واقعا تقوا فایده داره هم فایدهش دنیاوی هست هم اخروی هست خدا به همه نصیب بگرداند و من یتقی الله یکفر عنه سیئاته هر کسی که از خدا بتاسد يكفر عنه خدا سيئات خداون سيئات و بديهاش را کفاره فرماید پاک و مي گرداند يعظم له اجرا و اجرش را عظيم مي گرداند اجرش را بسیار مي گرداند الله عز وجل من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن حال خدای تعالی می فرماید بعد از طلاق اون, اون که خاندیم قبل از طلاق بود الان بعد از طلاق بعد از اینکه طلاق دادید این زن باید کجا زندگی کنه خداوند می فرماید که بهش سکنی بده چون هم سکنا هست هم نفقه هست هم محلی برای زندگی هست و هم نفقه هست سکنا بهش بدید یعنی محلی برای زندگیش بدید تا زمانی که در عده هست من حیث سکنتم که خودتون زندگی میکنید من وجودکن. یعنی بر اساس توانتون در اینجا توان زن را و شرایط مالی زن را نگاه نمیکنن شرایط مالی مرد را نگاه میکنند مرد اگر بالانشین هست زن را در همون منطقه بالا بالا با جایی که خودش زندگی میکنه جایی بده. مرد اگر خودش در یک جای پایین میشینه دیگه زن اجوار نکنه نه من. از فلان قبیله هستم بای فلان جا من زندگی کنم نه. از کنو هنم من حیث و سکنتم که خودتون سکونت داری من وجدی بر اساس توان خودتون یا بر اساس حمتتون ولا لا تضار روحن لی تضیقو علینا بعضی وقتا چون مرد باید برای زن که خانه داره این خانه باید برای زن تا چند ماه باشد امکان در اینجا را برای اینجا اجاره میده. یا اجاره نمیده ولی اگر این زن نبود این خانه را به مستاجر میداد و ازش اجاره میگرفت لذا میگه تا وقتی که این زن اده تمام بشه چند میلیون تومان من ضرر میکنم لذا کاری میکنه که زن بیچاره فرار بکنه تا این خانه خالی بشه خدا میفرمه این کار را نکن ولا لا تضار روحن لتضیقو علیهن یعنی اونها را بر اونها فشار نیاورید به اونها زرر و آسیب نرسانید تا تنگ کنید ارسر بر آنان لیتو ضیقو علیهن تا ارسر بر اونها تنگ بکنید این کار را نکنید بلکه ایسا که زندگیش را بکنید ادیش تمام بشه حکم خدا اجرا بشه و این کنن اولات حملین فانفقو علیهن حتی یضان حملهن اگر صاحب حمل بود یعنی این کسی که این زنی که اد می گذرانند این زن حامله است نفقش هم بر شما است فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن انفاق کنید حتی که وازی حمل بکند چون اون بچه شما را دارد در وجودش در درونش در شکمش نگهداری میکند پس نفق حقش است مگر نفق بقیه متلقه ها نیست چرا که ادهش غیر حمله است اونم نفقه داره پس چرا این را خدای تعالیٰ ذکر کردند که مامورا این نفق مشکل است امکان داریم مثلا بعد از یک ما متوجه شده که زن حامله است تا هشت ماه تا 9 ماه نفق دادن تا عفت ماه خیلی سنگینه خداوند تعالیٰ به این خاطر به صورت خاص این را کرد که باشه طولانی بشه تاریخش تا هر وقتی بشه تا همو وقت باید بهش نفقه بدهد و اگر حاملی نبود بلاخره اده داره میگذاره با اون عادت ماهیانه یا سماهش وقتی آیسه هست هم بالاخره سما چیزی نیست اونجا هم باید نفقه بده فا ارضعنا لکم اما بعد از بعد از اینکه که تمام شد بچه را به دنیا آورد الان بچه بچه را شیر میده بچه را نگهداری میکنه نفقه بچه هم بر او هست بر شما هست بر شما پدران هست فا این ارضان لکم اگر شیر میده بر شما فا آتوهن نوجورهن پس اجرشون را شهریهشون را مزدشون را حق و زحمهشون را بدهید وقت میرو بینکم بمعروف با هم دیگه مشوره بکنید طبق دستور شرعی زن بگه که بله من شیر میدم شوهر بگه تا این مدت مثلا مدتش زمانش حق و زحمهش همه چیز بر اساس مشوره بشه و این تعاصرتم اگر بر هم دیگه سخت گرفتید یعنی زن میگه نه ماهی دهتون ندی من شیر نمیدم خب شوهر نداره از کجا بیاره لذا اگر بر هم دیگه سخت گرفتید فستردعو له اخرى پس برای او چیکار کنید؟ شیرده دیگری را طلب کنید یعنی پیدا کنید کسی که بتونه بر اساس توان شوهر را شیر بده و بعد تا زمانی که نفقه بر شوهر هست چه نفقه زن چه نفقه بچه اینجا هم شرایط مالی زن را نگاه نمی کنند مالی مرد را نگاه می کنند اگر مرد سرمایدار است بر اساس یسر و بر اساس سرمایه خودش خوب بده با فراو فراوانی بده نگاه نکن این زن زن فقیری هست بالاخره اون شرایط خودش را نگاه کن اگر مرد تنگ دسته کم دسته بر اساس شرایط مرد بازم به همون مقدار درآمدش و بر اساس اون سرمایه که دارت خرج کنه لیون فقدو ساعت من ساعته باید خرج بکند دارای وسعت از وسعتش یعنی سرمایه از دارای سرمایه از حد به حد و من قدر عليه رزقه هر کسی بر او تنگ شد رزقش فلينفق مما آتاه الله باید خرج کند از آنچه که خدا به او داده لا یکلف الله نفسا الا ما آتاها الله این جمله خدا خدامند مکلف نمی کند هیچ نفسی را مگر آنچه که به اون نفس داده یعنی نفسی را خدا زیاد داده از او میخواد که نفقه بکنه زیاد اگر کم داده ازش میخواد نفقه بکنه کم سیج الله بعد عسرین یسرا شما احکام خدا را بجا بیاورید دستورات را من و عن انجام بدید اجراک کنید اگر برای شما مشکلی بود بعد از این مشکل خدا آسانی میاره وكایم من قریت عتت عن امر ربها این بخش دوم سوره است اونهایی که دستورات خدا را بجا نیاوردند اونهایی که فرامین خدا را نادیده گرفتند اونهایی که دنبال نفس و هوای نفس رفتند و از خدا نشنیدند سرکشی کردند و تمرد کردند خداوند می که ما اونها را حساب گرفتیم، ما اونها را عذاب دادیم، ما گرفتارشون کردیم، ببینید شما مثل اونها نباشید، شما از واقعات اونها درس بگیرید، عبرت بگیرید، و ای من قریت نعتت عن امر ربها، چقدر قریه ها یعنی اهل قریه ها، یعنی نافرمانی کردند سرکشی کردند عن امر ربها از امر پروردگارشان و رسوله امر رسول یعنی گوش به فرمان رسول نشدند از رسول اطاعت نکردند فحاسبناها حسابا شدیدا ما از آنها حساب گرفتیم حساب سخت وعذبناها عذابا نکرا ما انها را عذاب دادیم عذاب ناب نکرا یعنی عذابی که ناگوار بود نخوش نا بود برایشون عذاب بسیار خراب و ناگوار بشون عذاب دادیم فذاقت و بالا امرها اهل اون قریه و اون قریهات ها چشیدن و بالا امرشان در دنیا در دنیا هر کار بدی کردن کیفرش را دیدند. و کان عاقبت و امرها خسرا عاقبت امرش چی شد؟ خسرا خساره شد زرار و زیان شد بعد بختی شد اعد الله لهم عذابا شدیدا و اونچه که مهم است اینه که خداوند اونها را که معاخذ کرد به عذاب در این دنیا خدا بسنده نمی فرماید به عذاب در این دنیا اکتفا نمی فرماید در اون جهان عذاب هم سختی برایشون آماده کرده جهنم خطرناکی برایشون مهیا کرده اعد الله لهم عذابا شدیدا الله عز وجل فرموده برای اونها عذاب سختی لذا شما ای مؤمنین شما ای عاقلان شما ای اهل خرد اهل اندیشه شما از خدا بترسید فتقوا الله برای بارِ بحث تقوا لذا الله عز وجل می فرماید فتقوا اللہ بترسید از خدا داشته اشتباشید یا اولی الالباب ای آقلان ای خردمندان الَّذِينَ آمَنُوا آقل کیه؟ آقل مومنه کسی که ایمان ندارو آقل لیسو دیوانه هست و آخرتش را برای همیشه خراب میکنه قد انزل الله ایلیکم ذکره ببینید ما میخوایم تغوار پیشه بگیریم از خدا بترسیم خدا هم فرمود فتق الله چطور تقوی را پیش بگیرم رای تقوی چیه رای خدا ترسی چیه قد انزل الله علیکم ذکر الله می فرمای خداون نازل فرموده سوی شما ذکری یعنی قرآن پندی قرآن یکی از نامهای چیه ذکری سراپا معیزه هست یعنی تقوی به وسیله این پند و معیزه حاصل میشه واقعا اگر انسان خوب توجه بکند؟ دا بقول مردم با گوش قلب توجه بکنن نه با گوش سر هم قرآن مجید مواعظش مطالبش ایمان را اضافه می کند و اذا تلیت عليهم زادت هم ایمانا هم ایمان را اضافه می کند، هم تقوی را تقویت می کند. درس قرآن و فهم قرآن باعث این میشه از ایمان و تقوی میشه. لذا الله می‌فرماید که آن زل الله علیکم ذکرة. این شاره اول هست. یعنی اولین شاره که شعر برای ما آورده‌چیه قرآن است. دوم رسول اینیتلو علیکم رسولی که تلاوت می‌کنه بر شما آیات الله آیات خدا را. شاره دوم رسول است. اگر ما بخواهیم اینها را یک شارع قرار بدیم، هم یک شارع هست. قرآن مجید شارع چی هست؟ علمی هست از اون قرآن شما میتونید یاد بگیرید شارع را رسول الله صلی الله علیه وسلم شارع عملی است. یا به تعبیر دیگر قرآن کتاب کتاب خواندن هست و رسول الله همون قرآن عمل هست. رسول الله قرآن است. به تعبیر بعضی از اولمای قرآنی است که راه میره. کانه خلوقه القرآن، اخلاق رسول اللہ هم قرآنی. یعنی میخوایی که قرآن، اقایه قرآن را ببینی، اعمال قرآن را ببینی، اخلاق قرآن را ببینی، آداب که قرآن گفته ببینی. همه را در رسول الله ببینی. پس رسولا یتلو علیکم آیات الله مبینات آیات الهی ان آیاتی که واضح خب این آیات که تلاوت میکنه رسول و این قرآن که خدا برای شما به عنوان ذکر و پند و معز فرستاده تأثیرش چیه لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الى النور تاکی بیرون کنت کسانی را کی ایمان آوادند و عمل صالح انجام دادند یعنی کسانی کی راہی ایمان و راهی عمل صالح را انجام می گیرند قرآن و رسول الله انها رب بیرون می من الظلمات از تاریخی از جهل از شرک از کفر از نفاق از تمام گناہان الان نور بسوئی نور بسوئی ایمان بسوئی هدایت ظلمات زیاد است نور اما ایمان تو ایدی کیه ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا هر ترغیب هست خداوند تشویق میکنه هر کسی ایمان بیاورد به الله ایمان بیاورد به توحید الله ایمان بیاورد و عمل صالحا و عمل الصالح انجام بده يدخل جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا الله او داخل میگرداند در اون جنات و در اون باغاتی که جاریس از زیر درختها و قصرائش نرها همیشه در آن جنات میماند قد احسن الله له رزقا خدا مند برای او رزق زیبایی آماده فرموده رزق زیبایی تهیه فرموده و اون رزق منظور از رزق تنها خوردنی نیست تمام اون چی که خدا بهش عطا می کند. خوردنی هم رزق، نوشیدنی هم اون کاخ هم اون انحور هم رزق، لباس و ظرف و هرچی که در بهشت همه را خدا بهش عطا می کند. قد احسن الله له رزقه. الله الذي خلق سبع سماوات این دلیل توحید اقلی هست و از این دلیل شما به این می رسید که واقعا خدا قدرت دارد. اون ذاتی که قدرت دارد پس همه چیز را برای شما فراهم می کند. اما در این دلیل توحید خدای تعالی بیان می فرماید که من هفت آسمان را درست کردم و زمین هم مثل همان هفت آسمان. یعنی چه؟ ببینید اول ترجمه الله الذي خلق سبع سماوات الله انزاتی ذاتی هست که آفریده هفت آسمان و من الارد مثلهن و الزمین هم مثل همون آسمان ها ترجمه اینه یعنی واقعا زمین هم هفته هستند اگر زمین هفته هستند کجا هستند سوال دیگه اینه که اگر زمین هفته هستند چرا هر جا تو قرآن سماوات جمع میاد زمین چی میاد مفرد میاد ارض میاد ارض ها سماوات و خلق سماوات و الارد آسمان ها و زمین اگر زمین ها هفته بودند باید می فرمود خلق فرموده هفت آسمانها زمین زمینها چرا جمع نمی فرماید مفرد می فرماید اونجا معلوم میشه که زمین یکی هست اما اینجا معلوم میشه که زمین هفت هست خلق سبع سماوات افرید هفت آسمان و من الارض مثلهن و از زمین مثل آمن آسمان یعنی چه این آیه را چندین توضیح کردند علما من به بعضی از توجیهات که قوی تر هستند خدمت شما عرض می‌کنم اولا بعضی میگویند که این تشبیه زمین به آسمان در عدد نیست در خلقت و پیدایش است یعنی چه یعنی اینطور ترجمه میکنم شما متوجه بشید خداوند آن است که آفرید هفت آسمان را و من الارد و زمین هم مثل هنم مثل همون هفت آسمان زمین را هم آفرید یعنی همون طور که هفت آسمان آفرید همون طور یک زمین هم آفرید بی این معنی میشه پس تشبیه در عدد نیست تشبیه در چی هست؟ در خلقت و پیدائش. همان همانگونه که هفت آسمان آفرید همانگونه یک زمین هم آفرید اگر این طور باشه بعضی علماء به همین معنی کردند اگر اینطور باشه پس زمین یکی هست تا نیستند اما بسیاری از علماء معتقدند جمع بزرگی اگر بگم جمهور هم شاید زیاد نگفتم که زمین هم تا هستند در حدیثی هم می آید که کسی یک وجب زمین دیگری را غصب می به اندازه همون یک وجب خداوند از و روز قیامت هفت طبق زمین را توقی می کن به یعنی به اندازه همون یک وجب هفت طبق معلوم هفت هفت زمین است و اینجا هم معلوم که و من الارد مثلهن هفت زمین هستند زمین مثل آنها تشبیح در عدد است یعنی همونطور که آسمان ها هفت هستند زمین هم هفت هستند وقتی که زمین هفت هستن پس چرا این زمین ها جمع نمیاد در هیچ جای قرآن دیگه ذکرش نیست بعضی میگویند چون زمین ها مثل آسمان نیست که آسمان طبق به طبق است در وسط خلا هست در وسط فاصله هست از هم دیگه جدا هستند از هم دیگه فاصله دارند لذا این هفته تا به حساب میشن. اما لایه های زمین با هم دیگه چسبیدن با هم دیگه متصل هستند در وسط خلای نیست در وسط فضای نیست لذا این هفته یکی حساب میشند این هفته یکی حساب میشند بعضی این قول را گفتند بعضی گفتند که نه هفته زمین مثل آسمان طبق به طبق نیست مثل آسمان بالا و پایین نیست این هفت تا زمین در کنار هم هستند وسط اینها آبها هستند وسط اینها دریاها هستند مثل آسمان طبقه به طبق نیست که هفت تا به حساب بشه لذا این کل زمین در کنار هم هستند اینها یک زمین حساب میشوند چنانچه علامه علوسی گفته قال ابو صالح هو في كونها سبعاً اینکه زمین ها گفته شده هفت تا فی سبعه ارضین هفت زمین هستند، اما منبسط کنار هم پهن هستند کنار هم فرش هستند ليس بعضها فوق بعض سر هم نیستند یفرق بينهم البحار بین آنها هستند دریاها هستند و یذل جميعها السما همه زمین ها در کنار هم هستند این آسمانی که ما می بینیم این آسمان زل و سایه و سقف همه هست همه زمین ها کنار هم هستند یک آسمان سایه اون هاست پس این یک زمین حساب میشه. شه و رویه بزاره که عن ابن عباس همین چیز از ابن عباس هم روایت شده پس وقتی که این را بیگویند اولمای معاصر چونکه ما مردم کنجکاو هستیم یک مقدار علم بیشتر آمده درباره جغرافیا اطلاعاتی هست لزما ما کنجکاو میشیم که اینا کجا هستن پس علمای معاصر بعضی ها بر اساس همین قول و روایتی که هست زمین ها رو مشخص کردند هفت تا زمین چی هست یک قارات را گفته آمریکا دو آسیا سه اروپا چار افریقای شمالی پنج افریقای جنوبی شش استرالیا هفت نیوزلند که همه اینها به وسیله آب ها زیم دیگه جدا هستند این قول دوم قول سوم که آخرین قول هست اما این قول یک قول زنی و احتمالی هست میگویند که ببینید هفت زمین به معنی هفت کره مثل زمین شاید به این معنی هست فعلا ما یکی را دیدیم و در یکی زندگی میکنیم بغیر ما کشف نکردیم شش تا کره دیگه هم شاید هست و شش تا سیاره دیگه هم هست چنانچه این کره به دور خورشید میچرخد اونها هم در همین مدار میچرخن ولی هنوز بشر به اونها نرسیده شاید اون کرات مثل این زمین چون این زمین ای هست و این زمین ای است که قابل سکونت هست بقیه سیارات که دانشمندان رفتن قابل زندگی نیست نه اونجا اکسیژن هست نه آب هست بعضی ها مثلا یک آثاری و یک امیدهای درست شده که شاید آب باشه یا چیزی باش که اونجا زندگی کرد لذا میگویند که کرات دیگر هست که اونجا نه هم اکسیژن هست و هم آب هست مثل زمین اونجا هم قابل زندگی هستند ولی ما هنوز به اونها نرسیدیم ما هنوز اونها را ندیدیم شاید هفت زمین به این معنی خدای تعالی فرموده والله اعلم البته یک روایتی هست که هفت زمین هستند در همه این زمین ها در همین زمین ها این که در این زمین آدم آمد و اولادی داشت در اون زمین هم آدم آمد در اون زمین هم نوح آمد در اون زمین هم محمد هست این روایت روایت موضوعی هست روایت خود ساخته‌ای هست این روایت روایت درستی نیست خب الله الذي خلق سبع سماوات ومن الارض خداوند آن ذات است که هفت آسمان را آفرید و همچنین از زمین مثل آنان یتنزل الامر بين بین این زمین‌ها و, و زمین خداوند امر خودش را نازل می‌فرماید. امر چیه؟ هم بنویسی تشریعی هم تکوینی امر تکوینی مثلا خداوند از زوجل حوادث و اتفاقات و جریاناتی که بی وجود میارد مثلا باران امر خدا هست بعد امر خدا هست آبادی امر خدا هست قحطی امر خدا هست وباو بلا امر خدا هست کرونا امر خدا هست زنده شدن انسان ها تندرستی انسان ها مردن انسان ها همه حوادث و تحولات اینا تکوینی هستند. امور تشریعی مثل دستورات خدا، حلال، حرام، انجام دادن، فلان کار انجام ندادن، این امور تشریعی شریعی هستن. لذا خداوند عزوجل و جل تمام امور تکوینی و تشریعی را بین این زمین و آسمان نازل می فرماید توسط و فرشتگان لتعلمو تاکی شما انسانها بدونید که ان الله علی كل شیء قدیر خداست که بر هر چیز قادر و تواناست وان الله قد احاط بكل شيء علم و خداست اینجا ببین دو خاصه بیان شد دو خاصه که همیشه روی اینها مذاکره کردیم با شما یکی خاصه قدرت الله یکی خاصه قدرت یا به تعبیری تصرف و خاصه دوم خاصه علمی لذا الله بر هر چیز قادر است والله تعالی هر چیز را احاطه کرده از نظر علم و آگاهی پس خداوند هم علمش کامل هم تصرفش کامل ہے، بس معبود همینه. اینجا ثابت شد که خدا تعالی علم و قدرتش کامل بحث قبلی قبل از این بهشت بود و آخرت بود، پس کسی که علمش و قدرتش کامل اون قادر از همه انسانها را دوباره زندگی کند، و همیرا هر یکی به جزای عملش برساند.